34. او الله و علی محمد وعلی تعظیم فصل والجواز منه وان دهندگان فد مزاره و اند فلا اول اولیش مواجز مفعلا واحد بل اولو موجز مفعلا واحد اول اونیه که یک فعلو جهد بل اولو موجز مفعلا واحد هم. و هو اربعه او احرف و, و این موجز مفعلا واحدن چهار حرف ال لامو ولا لام و خودش میگه عد تلبیگتان یعنی لام لاملاایی که فرد رو تلبیم میکنم یعنی فرد رو انشای میکنم. اون لامی که فرد رو انشای میکنه لام هنده لام هم برخیه و با اون لایی که فرد رو در مزار رو انشای میکنه لایه نهیس. عد تلبیگتان سپت لام و لاس. نهول لیاقم زیدن مثال اول و لا تشرک به الله. این نشکل از این هم لا تشرک به الله لای ناحی است لا تشرک به زمیر انتفائلش به الله. جا رو مجموع متعلق به لا تشرک ولم ولم ما یکی هم لم و دیگری لم ما میگه لم و لم ما وجوه مشترکی دارند و وجوه اینو اینوارو زیاد خودیم هم تو عوامل هم تو هدایه لم و لم ما یشترکان فنفی هر دو حرف نفی هستند فعل مزاره رو منفی میکنند مشترکند این دو در منفی کردن فعل ول در مازی و هر دو مشترک در این فعل مزاره رو غلب میکنن دگرگون میکنن به سویه یعنی دیگه معنای مزارعیت نداره بلکه معنای مازوی و یختست لم به مساحبت عداد اما خصوصیاتی هم هر کدوم دارن که خاصت و لا توجد فی فیقه هر کدوم خاصه دارن که در دیگری نیست خاصه اون شیل. یکی از قواسلم اینه که میتونه با عدات شرط با هم بیا و یختس لم به مصاحبت عدات شرط و ان لم تقوم عبد این لم تفعل فما بلغت رسالته الا لم تفعل فما بلغت رسالته اگر ابلاغ قدیر رو نکنی و علی رو به جانشینی نگذاری ان لم تفعل فما بلغت صلات و ضر رسالت, رسالت دو خدا رو انجام یعنی هر اون چیزی که کردی ان لم تقوم اقلم تقوم فعل و فعل, فعل شرط این اقوم جزایش این یک خاصه ولی اینجا ان لم ما تقوم دیگه گفته لَمَّا بعد از ادات شَر و به جواز انقطاع نفی ها و جایز است که نفی لم یعنی نفیش مستمر نیست جایز است که شکسته بشه و به جواز انقطاع و بی که جایز است مختص شده به جواز به جایز بودن منقطع شدن نفی لم مثل این مثال لم یکن تام است نبود یعنی وجود نداشت صبح مکانسه سپس وجود گرد اصلا میگیم فلان کس اونجا نبود بعد از یه مدتی اومد یعنی هر دوتا شده در زمان گذشت میگیم لم ینف اندامو زیدن لم ینف اندامو زیدن یعنی چی؟ پشیمانی به زه سودی ندارد سمه نده من یا سمه نفع این سم نفع سپس بهش سود دارد یعنی مثلا فرض کنید سال قبل پشیمان شد سودی نبود شیش پای قبل سود دارد. احتمال داره. یعنی نفعش مستمر نیست مثل اینکه بگیم پری روز نبود لم یکون سمکانه سم دیروز شد یعنی نفیش شکسته شده نفیش استمرار نداره ولی شما نمیتونید اینجا بگید لم یکون اگه بگید لم ما یکون غلطه لم ما یکون یعنی چی؟ یعنی از پریروز تا همین الان نبود لم ما یکون مناشیده دیگه یعنی نفی ماضی تا زمان حاضر دیگه سمکانه سم قلعا مشخصه. پس اگه بخواد درست در بیاد بگیم لما یکون سمه چی چی؟ سمه یکونه نه؟ لما یکون. یعنی تا الان نبود سمه یکونه سپس خواهر پس بنابراین به جواز انقطاع نفی ها یعنی همین که لما استمرار دارد دفیش تا زمان حال لذا دیگه نمیتونه شکسته بشه اما در لم چون استمرار ندارد شکستتش اشتالی این از خصوصیات لم بود حالا خصوصیات لنب یختست لنب به جواز حذف مجزوم ها لقرینه لنب مختص است به اینکه جایز است حضف بشه مجزومش اگر قرینه نه با قارب طول مدینه قارب طول مدینه یعنی نزدیک شدم به این شهر المدینه گو ببینید عرب طول مدینه و لما و لما یعنی و لما ادخل دیگه به از قرینه کلام و سیاق عبارت فهمیده شده یعنی به این شهر نزدیک شدن ولی هنوز وارد باره... عرب طول مدینه و لما جو خاصه یعنی ولما ادخل المدینه این یک اختصاص و به گونه‌ای متوقع مدخول لما چیزیه که مخاطب توقع و انتظارش رو میگه. یعنی مخاطب منتظر است که امیر سوار اسبش بشه و در بیاد بیرون تا اینکه این بتونه یه نامه بهش بده لزاق اون شخصی که حاجب و دربان امیره به اون میگه لما به امیر یعنی چی؟ یعنی هنوز امیر سوار نشده نمیگه لم یرکبه امیر سوار نشد آه. یا مثلا فرض کنید شما در مطب دکتر منتظرش نشستید اون منشیش شما میگه لم ما یجی یجی یعنی هنوز نگردید چون شما منتظرید یعنی انتظارش هم هست بشین بیارد هیچ واقعه نمیگه لمیجه در لما چون به معنای هنوز فارسی خودمونه یعنی تا الان نیومده یعنی انتظار در موردش هست شما منتظر باشید خواهدون و به کونهی متوقع غالبا هم تو میگه غالبا اینطوریه یعنی 90 درصد اینطوریه که قول کرد مثل قول جنابالی مثال امیر رو میزنه که قول کرد به کسی که منتظر تا امیر منتظر امیره و میخواد امیر رو ببینه بهش میگه لمایر که به امیر رو یعنی تا الان هنوز امیر سوار نشده اینو به کی میگیم للمتوقع رکوبه للمنتظر رکوبه متوقع یعنی منتظر به کسی نمیگیم که متوقع و منتظر رکوب و سوار شدن. خب این مال اونهایی که یک فرم از سانی ما یجزم و فیلن. دوم گون جوازمی هستند که دو توفیر رو جربت وهبه ان ان که که رئیسشون ازما من من شرطیه ما متا ایو ایانه عینه که گفتیم عینه نیست چیه عینماست عینما انا، اینه خیلی کم استعمال شده، شاید یک درصد هم کمتر. تر انا، حیصما، ما اینها عدات شرک معانیشون را هم دیگه اینقدر تکرار کردیم میدانید کدوم برای زمان است در بین این عدات یکیشون هست که عدات معاربی کدومه؟ ایون بقیه چی اونایی که حرف که صد درصد مبنی هست؟ اونها یعنی که اسمند به خاطر اینکه دربر گرفتن در معنای ان شرطی رو اونها باز چیه ایو چون اضافه میشه و اضافه معارضه میکنه با شباهت بنا لذا ایو شده میگه فل اولانه حرفانه اون دوتای اولی حرف اند این و اسمو یعنی ما ل به هم دیگه این یعنی اگر از یعنی هر حرفا وَلْبَوَاقِي اون علل مشهور بواقی یعنی اونهایی که باقی میمونن اسمم میگه علل اشهر بنابر قولی که مشهورتره. اینها همه اسمم یعنی من و ما و متا و ایو و ایانه و اینه و, و انه و حیث و ما البته این علال اشهرش فقط در خصوص کدوم کلمه است مهما در خصوص کلمه مهما ادهی برگشتن گفتن این حرفه ادهی گفتن چیه؟ حرفه که حرفشون غلطه چرا؟ چون مثلا در این آیت که دیمش مهما تعتنا مهما تعتنا با همزه یعنی بیا ولی برای ما مهما تعتنا بهی منعایته الان این های بهی به کی برمیگرده به محما اون که زمین برمیگرده به مهما نشانگر چیه؟ نشانگر به اینه که محما اسمه و هر اگه حرف بود که زمین بهش بر فر اولانه حرفان ول بواقی اسما اون علل اشم این اقتضایشون چیه؟ کارشون چیه؟ میگه و کل واحد من ها یقت و جزا و هر یک از این عدات شما در نظر بگیری یقت تزی یعنی یک می و میتلوت شرتن و جزا یه شرط میخواد یه جزا میخواد شرطش بشه سبب جزاش بشه مسبب این رو لازم و کل واحد منها یفت از این شرطاً حالا هر دون ماضی باشن سلام داریم مثل این قمتا قمتا این اودتوم ادنا او با ای. این این او اودتوم ادنا یعنی چی؟ یعنی اگر شما به سوی ما برگم بودایید شوید ما هم به سوی شما در این قودتوم اودنا ماضی این او هر دو مضارع باشند ان تعود نعود ان تعود نعود یعنی اگه شما برگردید کردید ما هم رجوع خواهیم کرد ما هم پذیرش شما رو داریم او مختلف یا مختلف باشن مختلف باشن یعنی چی؟ یعنی یکیش ماضی یکیش مزاره خب معلومه بازی خودش میشه چند صورت؟ دو صورت یکی اولی ماضیه مثل این اودوتوم نعود با هم موسیقه که درست کردیم این اودوتوم نعود یا عکسش امتعودو ادنا امتعودو ادنا مختلف حالا دقیق فا این کانا مزارعینه حالا اگه هر دو مزارن مثل اون مثالی که زدیم کدوم بود امتعودو نه بود. اگه هر دو مزارعند اول اولو یعنی اول اولو مزارعند یا اولی مزارع در این صورت فلجزمو یعنی فل ثابت جزم ثابته برای اون فعل مزارعی یعنی در در اونی که هر دو فعل مزارعی باید هر دو رو چه کرد جزم دار در هم که اولیش فعل مزارعی صد در صد کارش کرد؟ و این کان وحده ثانی وحدهو مزارعن و اگر ثانی به تنهایی فقط بدون فعل شرطش وحدهو مزارعن مزارعه باشه فوجهان یعنی فلهو وجهان دو صورت دارد. یعنی دو وجه دارد دو شکل درش جایزه یعنی اگر گفتیم ان اودتم چی چی؟ نعود انعودتوم نعود دو جور میتونیم بخونیم بگیم انعودتوم نعود جزم بدیم و یکی هم بگیم انعودتوم نعودو و جزم ندیم علتش هم گفتیم در کتاب هدایه که وقتی این شرطیه در شرط ماضی خودش قادره به عمل کردن نیست حالت تنبلی پیدا میکنه که دیگه روی جزا هم عمل میگه و اینکان سانی وحدهو یعنی و اینکان سانی وحدهو مزاره انفلهو و چان برای او تا بچه تمام شد حالا دقت بفرمایید کل <تصفيق> جزا <تصفيق> این <تص یمتن او جعلهو شرطن و لازم لازمتون لف کلو جزایم یمتن و جعل و شرطن فلفا و لازمتون لده. یعنی هر جزایی که هر چیزی که جزاء واقع شه هر جمله که جزاء واقع شه اگر اون جزاء، اون جمله در جای دیگری به بعد از این شرطیه بیاد بشه فعلشن فانه میخواه اگر نتواند حتما نیاز به چی داره؟ بوده مثلا من میگم ان جئتني و انا اوکرموت ان و انا اکرموک که جو باید فا بیارم چرا چون انا اکرموک جمله اسمیه است و هیچ کجای دنیا شما ندارید جمله اسمیه بهر شرط بتونه یا میگم ان جعتنی و قد اکرم توجن و قد اکرم توجن قد اکرم توجن پس خانواده‌ایه جزا شد با ان جعتنی فسوفا اوکرمک سوفا باز ان جعتنی فوالله لا اوکرمن کرد قسم نمید به چی گفتیم هر ای که جزای شرط شد اگر ما قادر بودیم اون رو قرارش بدیم چی؟ فعل شد در دیگه یه این قبلش بذاریم فانه بخواه مثل اینکه فعل معاظی مثبت باشه فعل مزاره بالم باشه فعل مزاره ثابت باشه آگه اینها نیاز ندارن اما اگر غیر از این بود یعنی چی؟ یعنی فعلی بود یا جمله اسمیه ای بود که هیچ وقت به این که فیل شرط بشه در جایی رو نداشت شرایط چه در اینجا اگه شد به میگه کل جزایی هر جزایی که یمتن و جعل و شرطن ممتنه است، غلط هست قرار دادن اون جزا رو به عنوان شرط در جایی که یه جای شرط قرارش بدیم فلفا و لازمتون لحظ. فا واجب است لازمتون یعنی واجبتون لهو برای این جزاء فا لازمه واجبه باید حتما فاهم آه. این عبارت رو در کتاب عوامل ملا موسیه خیلی قشنگ آور گفته خیلی جالب آه. نگاه کنه همین عبارت بوده. گفته گفته کل جزا این این امتنع جعلو کل جزا این این امتنه اجالهو شرطن فلفاؤ لازم هم. به جای اون یمتنه گفته چی؟ این امتنه اون موقع خود همین مثال خود همین عبارت که داره مطلب رو بیان میکنه خودش را از میشه نگاه کنی این امتنه اجالهو شرطن امتنه اجالهو شرطن میشه فعله شرطه لازم هم. میشه چی؟ جزای شرط حالا چرا فلفاو لازم نتونید؟ چرا فاو بوده؟ چون جمعه اسمیه جزای شرط شده بوده ها. میگه کجاها هست که اگر جمله جزا داشتیم شرط نمیتونه میشه میگه کن یکونه جمعه تن اسمیتن مثل این که جزای ما جمله چی باشه؟ اسمیه باشه او انشائی یکن. یا جمله انشائی باشه حاله قرقی نمیکنه جمله انشائی فل و باشه فعل مثلا فهمز کنید که قسم باشه امر باشه, باشه. باشه. نهی باشه حتی مخاطب باشه جمله انشائی باشه نعمه بسر فعلا جمله او مازیان مغرونان به قد یا مازی مغرون به قد باشه اینا چیزهایی هستن که اگه باشن شرط هیچ موقع در جای دیگه نمیکنه لذاه ما فظب ما زي المغرون بقى نحو حالا مثال میزنه انتقام تقوم فعنا عبوم این مال کدوم مثال جمله اسمي انتقام تقوم فا اكرمين این مثال ما چيه انشائي است بنت ان تقوم فعس ان عقوما این چیه جمله فعل جامعه درست شو فعصان عقومه ام قمت فقط یا ام تقوم فقط این چیه؟ فعل ماضی با ایف فعصان عقومه یادتون هستش که چند ترکیب داره آه؟ میتونن عقومه فائل باشه میتونه سطح مسطح در جز دل. مسئله تو فعصان در چند جا هست که منج زوم میشه به ان شرطیه موقدر به ان شرطیه چی موقدر حالا چه میگیم ان شرطیه چون هر کجای قرار تقدیر بگیریم چیره تقدیر میگیریم؟ اصل رو رئیس رو لذا اصل و رئیس ادوات جزم چیه ان شرطیه است میگه و ین جزم ینجزم باب انفعال یعنی قبول جمع و ینجزمو یعنی قبول جزم میکنه فعل مزاره بعد از طلب حالا میخواد طلب امر باشه، نحی باشه عرض باشه پحزیز باشه و ینجزمو بعد از طلبه به این مقدرتا مجزون میشه به این شرطیه اونم به شکل مقدرشه البته اینو در نظر داشته باشید مع قصد سببی به شرط اینکه اون طلب سبب باشد و این فعل مزاده چی باشه؟ مسبب باشه و این رو آقای متکلم اراده کرده باشه قصد سببیت بین این دوتا چیه؟ نه و مثال نگاه کنید زرنی اکره زیارت کن منو اکرم کرد اکرامت میکنن احترامت میکنن خب زرنی اکرم کرد الان اراده کرده که زیارت او سبب باشه برای اکرام این همارده این اراده رو کرده یعنی سعب و سبب یاد میشه زرنی بیده عمره زاره از زوره زور انت فائل و نون بقایی و که مجزوم در جواب طلب مجزوم در جواب طلب به چی؟ به این شرطیه مقدر یعنی انتظرنی اکرمکه انتظرنی چی چی؟ زرنی اکرمکه بعدیش لا تکفر حد خلل جنب کفر نور چرا؟ یعنی کفر زیدن رو سبب قرار داده برای چی؟ برای دخول جهنه درست آیا اگه کفر نورزه باید بهش خواهج خب تدخل بجزن میشه در جواب درسته لا تکفر تدخول جهت خول جهنه فیل و و یعنی ان لا تکفر تدخول میگه ومن سمه و از اینجاست که یعنی از اینجایی که شرط است که اون فعل طلبی سبب باشد در آن فعل مزارف. از اون جایی که قصد سببیت بین این فعل طلبی و فعل مزاره شرط است ومن سمه امتنه امتنه یعنی غلط غلط است اگر گفته بشه لا تکبر تدخل نار که اصلا لا تکبر تدخول نار غلط است چرا چون لا تکبر تداخل نار نمیتونه عدم کفر سبب باشه برای داخل شدن به جهنم بلکه عدم کفر سبب است برای داخل شدن به به ان لا تکبر نار غلط است رضا پس این ما اینجا تدخل را نمیتوانیم به مجزون بخونیم به مجزون خوندن غلق پس باید چه این اینجور مواقع مرفوع میخونن تا جمله تدخل النار نار و همثال او حال شود حال شود از باهل فیده یعنی لا تکفر تدخل النار نار کفر نبرد زد. در حالی که در آینده وارد جانم این همین در قرآن هست لا تمنن لا تمنن نهیه تستک سرو لا تمنن تستک سرو از کسرت تستک سرو چون مسببه از لا تمنن نبوده است لذا پس بنابر این چی مرفوع شده و این فعل مزارع مرفوع جملهش محلن منصوبه حال است از برای فاعله لا درست شد؟ اگر یادتون باشه یک قسم از حال داشتیم بهش گفتن حال چیچی چی مقدره حال مقدره چی بود؟ حال مقدره میگونم الائی حال اگر شما گفتید لا تکفر تدخل و ناره این میشه حال مقدره چرا؟ چون خوف ورزیدن الان داخل شدن به جهنم در روز قیامت بعد است مردم. زمان حال بعد از زمان آملشه لذا به این حال میگن حال چی چی؟ مرر تو به رجل معهو سقرون بهی برگردیم نشون به بدن آه. لا تا یک فورت داد ناره. به جزم غلبت. نزار میگی گاقلی؟ به سمت امتنع. لا تا یک ناره. جزم. اگه به جزم میخوانید غلطه چرا؟ لفظا در معنا چون معنا فاسد میشه. معناي میشه. اگر کفر نفل وارد جهنم میشه. اون غلبت. بلکه اگه کفر وارد بارده بهشت میشه چون دخول بنار نار مسببه از عدم کفر لذا باید اینجا مجلوم نخوند بلکه چه خوند؟ مرخوب تا اینکه حال بشه اونم حال مقدره از فائل فعل فائل فعل, فعل نه فائل فعل تلبی که فی افعال من حوزن